بگردانی عزیز و رو خوشبین است. سلطان لب. خوشحالی لباسی هشت و پنجی نوی چشتی نویکتی به چشتم جویی مکریانی نولاتن فرمون لگلمن بن. حجر مکرانی بردام لسگرانوئی بسره تکانی جانی خوئی به تایبتی لوکاتی کلا گشتک دا بوله پاریس لگل هاولانیدا حجر دمسې براستی کدلین پاریس بو کیجهنه رزدکن شاریکی زور جوانه پرله بغچو سیرانګه شینایو کسکای ایم پیل له کسکای یو مرګی ولاتی تر کسکتر ده ته لجوان کردنی جوانکردنی شاردا هیز دریغی نکراو بوخه رازا وی خیالا جروباره لهندک شوین توشی خانوی رشب دوکل دیواری نا قولای نیوارو خوده بی بلام زوربه شارکه زور جوان و پاکو خیوینه قوه خانه یک جرزوره کلشوینانی تروانیه به طیبتی لنزیک دنشگاه سوربون هر یک جرزور بو تا من دوده بون دچون قوهی که ترکیم دخوارده و استراحتم دکرد کنگره بو حوت روش دامزره لهمو دنیا زنین روشلات ناس هات بون شکل زور سیرد ایوه هبو کراسکی او دامانی سور، برانگی خوین دبرده، پیخواس، سرقجن، ایوه هبو بشی بر مالی مزگوتی که کرد بوا میزر، کشی شک هبو بناوی توما بوا چند سالان لبنان جیع عربی باش دزانی، للاین زنانی فرانسیه و زور بقدر بو او پیاوا چند سال بوا جیان خوی بوا خزمتو یاریددانی گلی بدبخت و کلالی کرد ترخان کرد بو چندین کتیبی نوسی لناو آلمانی در وشده دا نوبان جهه بو پیر یک بو ریش زور جوان و بسرو سیما کلیسایی که به دسته و بول او پیاو چاکا خویلیه کردین بکسو کر پروفیسور لازار نو سوربون لسربون زور دستی در رویشتو زور پیاو ما فارسیشی بو فرسیشی ازانی براس پیری تو ما بوا قولی پیداین که کاریکی وابکا ایمش بتوانین خومن وگ گلیکی سربخو نشان بدینگ یما منری هیچ دولتک نه بوین گلی کورد له هیڅ دنیايە بە رسمینە ناسراوە بناوی عراق یا ایران قصب کین کارۆش حالات ناسانی تورک و ئیرانی و عراقی شیلەبون بەلم نەفوزی ک شە و ماندوبونی جویسو بە زەی پروفیسۆر لازەر بەرامبر بە کورد کاریکەنکێرت لساعت لە سەعات 9 تا 12 جلسیی کی بتنیا تایبەتی کورد و هاواری کورد بکریە حول ماندا تابوت وانین زنانی کوردی زور لیکو کینوه که قدره کی زیاتر وتیان دکتور کامران علی بدرخان لا جنوب فرانسه و جنین خوشا دکتور مکنزی انجلشمان هاتله که زور کوردی زنو شارزای و, و حالی کردستانه دکتور شفیق قزاز دکتور محمد ورزر خلقی سلیمانی جنی ورزر که کی جکی چیکوسلوواکیو کوردیناسی کی, کی باجبو دانشجوی اکی عراقی بناوی مظهر صادقی برام کشیش یوسف متا که خلقی سلیمانی بو ساز بون بجوی سموت دلین دکتور محمد مکری ایرانی لپاریس بابایش بلین وک باده کسان قدیل که بدن لپرمی پیکنینی دو هر خو ندبواوا وتم جویس گلتم نکردوا بو پیدکنی وتی مالاوا لو جوک خوشتر چون دبه دکتور مکری نخوشی خیالاتو و هاما دردی او لمعالجه درد بکست با کس چاری نکره لسی باری خواهی ترسیه هرکس زنگی درکی لیده یا تلفونی باب که لای وای هاتون بی کجن خواهی لحوت کننده تاقد دکا جنوی گوره لای او امه کبل انتو کردی یستا چونه توقس قور رو برهاد هد که اویش لم کبنه و بشدار بیو هه <تصفح> دیفا لگلی کرد بکه مقاله کم نوسیبو کبی خوین موا صادق با فرانس توما بوا هرچن زوریان پیسی رو دل تزیل احساس بزوین بوا بلا موتیان بوا او کوبو نوا دست نادا. پیوست در باری گلیکی شرخی بجور که نظری ناسان برو خوی بکشی قصب کریه. لسالون اکی سور بون کوبو نوا. زور لعلمه روژلات ناس حت بون جمان لیا بگرن که پروفیسور لازر پی راگه اند بون. کشتوما بوا من بر رئیس کوبو نوا حلبجر. بیانات اکی زور علمانو دل سوز دکتور کمال مزهر به زمان انګلیسی در باره تاریخ و شرکان ازاد خوازی قصه کړ زانه کی ورگزلی ترک هستاوتی ل ترکیا کوردو مساله کورد نه همو ترکونو بیگانه تدا نه دکتور کمال مزهر جواب و وکړه ترکیا دا له همو کی وکړن بونی ملیونها کورد ل که کابرای ترک دستی هلینا اجازه خوښت دیسن قصبه تومابوا مابو بلافی اشاره کی زور سکه اتیهنی با کرد که اجازت نیه. با خویوتی چون پیموابی امکابره عالم و راجلات یان پیموابی درسی خوند و من اگر نلین تعصب با خرز داده نتونم بلند ترکیه دار ترک هر نیه. حیف پیوان نزن لکو بنوی علمی دا بهش داره. کابره ترک هستاو رویشت. به عربی تومابوا بمنیوت او سگه چون لروی حالات بیواب خوا. این کاریش تک پکال زورله ها بشان قصیان کرد و جلسه تابو راجع آخری کنگره که همو میوانان و خانهخوی فرانسوی ل سالنی چی جورا کوبو بناوا کاربری کنگره و بریارکانیان راجعان ل سر تریب بناوا اعلان کرده که میوانانی کرد ل جرگی زنانی راجلات نزدی برسمین اسرانو اداری سوربون قراریده مرکزیک بو پرپدانی تحقیق ل سر مسئله کرد و ناساندنی کردستان و گشدن به تاریخی کرد ل سر بود زی کردیشوک ملتانیتر حسابی بواب کری راستی سرکوتنی که گورم اندسکوت اویش لسه ای توان بوا پروفیسور لازر جویز بلابو هزار رحمت لاتوما بوا کده میک وفاتی کردو؟ بلان بیستو ما پروفیسور لازر و جویز شکر ماون دیان گود پروفیسور لازر پتر لپازد زمانی دزانی که بفرسی فارسی کردوتم خوزی کردی فیر بای گوتی لو تا اومدیوه زورم ارزو بم. اوا جار زمانی زماني ژاپونی فیردمم پاشان خری کی کوردی دم لکونگردا جایزه کونگره دره بکابرا یک سوری سرو دمو شاو بیتوک دتوت چوندری سورو پاکراوه شکله کی زور ناشرینی هبو تنانند دروشي موي پیو نه بو کابرا جولک یک بو هر لا کتیبه قبران و خطو زماني فینیخی سازدا بو وو فکرد بو یک تیبو مردوی سی مردوی سی 4000 سالی کرد اوانده بو لچپلدره نبیتوا حوت روژی کونگره نانی نیواروژه من لسر سور بوان بو در چوین ریستورانه کو پار من نعدد روژی کل ریستوران حتمدر فردیناند میش چاوروانی دکردم یکتر من ماچ کردو لقاوخانه دانشتین فردينند میش لواکی خلکی لوکسمبورگ بو زار عاشق کردو کردی بو. چند جارع لشکر دیبوم، کرمنجی و هادویت که نمی دزانی کردی. تناند جارع وی تی یه وقت دخند سفر، هیچ خدمت نکنه و جواب ندادن چون که منش وایا میش کردی, اوان. کردی که او آن، اول بو بوقردوستانی ترکیه، جندرمه مگرت بودن، برده بودن ل زندانی ون دا حبسیان کردی بود. کردي زندانیان لی لیدن خیره کردکان زوریان لیدابو پشتین شکنده بو بختی او زندانیکانی کرد دو دستهیدش بیاکن دستهیتر لرقی اوانا لسرین کردو تاو پارستو یانا با چی گیراو چون که کوردی بی که کردی لی لپاشان که زنیوی بدن یوانایا نامی که به انگلیسی لستنداری وان نوسیو وا. ایو من تنگردو نه من کم شرط به اواب کم دولتی گوری من باز می‌سکتند پیپکا. دیگود واحدی اربو استاندار نیزازانی لکسنبورگ لا دولت جورکانیو نفوسی به حال دقت چوارصد هزار. ترساو عزیزی ل خواستموو بری اندام. هات موال لکسنبورگ شکایتم لای وزیری در و کرد. وزیر کمان برازدک مزنا گویی تویی شمن بو سازدکی. سالی بایی نیو میلیون دلار سود او معامله من دگل ترک هیا. او کردی تو دلای مظلوم تو آنیان سالی بایی شصت هزار دلار معامله من دلیم حق تاو لسرت و جواب دین. جا فردینند هاتوه لپاریز منی پیدا کردوا. حالی پیچه بون دبیب چین لکسنبورگ دایی کم شیویت بولینی. ویتم که پیا فردینند پیو ششصد کلومتر با شیوی دایکت سفر صفر نکه. فردینند گوتي خری کم فرسی لکسنبورگ دخوینم تاب چم لفغانستان بگرم. بلا ما مستاکمان کرده که بیجوه. وتم بچی دزانی ویتی؟ روژیک و شیک کوردی وتم او کوردی تو کوردی گوتینە فارسیم بلەم تو زیک کوردی فیربم گوتم فارسی بلایە و ای بە فریزمانی کوردی بە تو کوردی ولات و ای راستی لە بلای راستی ئویش بە رازەکا دوای دوی کونګرو روجانی پیش کونګره با پاریز داده د ګرين چوی نه برج ایول چوی نه کاترالی نوتردام نوتردام کشه کوم دیت لزیربو بخښ کی جویسم ګوت او کوټلی ما می خوما د بی بی سینما هراي له جویس کرد. ور وره کشفلان مامی ما می هجر گوتی، جویس ګوتی احمق هجر غلطت پیکه تولیت بو تراستي چوی نه مقبره ناپلیون لجاتی حلوه و خیر من بدنیه یکی سی فرانکن پول لیه سندین، راستی مقبری که دیدنی، چکو اسپابی سربازانی او زمانه وکخوی راجی راوه، چوینه موزی لوفر، چند ساعتی که تیدگران کلیمرون مانگی که دویه تا او آسواره هنریه ببینی. روژک توشی کروانه که قراجی بوین، لنزیک چومیسین چند کری که با کرتانو چوار اسپی چکوله توپل که گوره ترکیه ندگیشتا اسطوره ایرانم، اسپیه که لوانه عربه که تخرابو پیان بو. زورم لا سیر بو پرسیمان و تیان ام جسن اسپه هی سکوتلاندیه او کرو اسبو عربه پاریسی با سیران سواری دبنو پولمان ددنه. با صادقم گوت دالین للندن موزی میوهایه، گویی لرنی روانیک تی بی شهر زای پاریس و تی های او من نمذنی وا چونه موزایی او که با موزای مادام بواری بنو بانگا حتا بلی سیر بو یک جارزر لپیوانی تاریخی و دسالات دا داریان لمو دروس کردو. تناند شاو شاجنی ایرانی شیلیه شاعرانی مشهور فرانسو زور لپیوانی تاریخ من دید در چون سیری کامل اگ پشت شو شاو بون پاسوان اک لوی ویستابو تاوزیندو تنانت وردموی پشتی دستی دانه بدانه دیاربو، زغت زق تماشایی دکردین کچی اویش هرکوطالی لشن بو کابرای اک لسر نیمکتی اک راجنامه صادق لی پرسی بکوی د کسی اویش هربه میو درچو همشت من لیه بو بو میو او جار بیه پرز بلای کوتل که میو در رویشتین کچیو تی بیره دا قداغه اویشم پیزور سیر بو در خیزران دیت لبخشیگ ده پتر لشازده میتر برزو قف قف کسک قط روشی که تیدا نبو داری خیابانی شانزالیزم زور پی جوان بون کروانیم هموی در برو خاسه خو منه. کاش ایوسف ظری هاتوچود کردین کردی سلیمانی بو چند سال پیش مرگ بو هات بو فرانسه لدومانگ دا تو انی بوی پیش نویجی سیکل اسپید که وتم کاش ایوسف تجاری کی تر دیم یان یا ان روت فروشتن دبه یان دبی با پاپ لروم دعوتی کردم با کلیسای بانگی کرد چوار بو شراب بینن وتم بخوا من لگل تن آخامو وو تی باشتر من امانه بو خمدم گوتیشی اگر دگل کمال دست نگرکی ساندونی که گرکی بی آبروی پاریسا من برن نوگ لاتو پاد روتان بکن گوتم شکر پاری جگی وامان پینیه شویگ لبر قوخانیگ لسر کورسی لسر بون کابره که زور مست تلاو تل حد داوای پولی کرد که آرقم نماوا فرانکیکم دایا گوتم برو خوشی رابویره شفیق و کمال زور پیکنین آخر بطاق فرانکیک چونی خوش لیراده بویره؟ دکتور کمال اوتی دسمه هولند، جلک لوی هرزانه، جویسته گیاندم کمچو، کمال رویشت. داگل جویست سواری قطر بوینو بلیون دا چوین قدی چیایی مون بلن، لشاری کچکوالا بوینو میوانی کلیسای کشه یک من دیت؟ من بسی کردی بودکمو جویست ترجمه دک کشه گریه و فرمیسکی برشاس بیکی ده حت نخوار، چوار کشی شیطریش حتن، دیار بو شرح احوال کردی مالویرانو کرکجراوم بوده دن نماینده نمائنده کلیسان عالمی بون بریارانده که به همو توانا لمر درمانو کومگی نغده و یارمتی من بدن گوت هر استهنده که پولت ادینه و تم مننامه شورشمان شورشمن فرانسه و دیتلاتان یارمتی بوده بنیرن کشه خان خوی من بماشین خوی بر دینیه مون بلن برانبر با دیمنی جنوی سویس نهاریکی زورباشی جوئيس ديگود كا غرياندو تواي زانيوه استا بو خود برسيتا شو شارل شارن لأوتيل مايناو سبيهاتيناو با قطار برو پاریس لرغا با مزره دا كدا رويشتين لهمو مزرهان لاموابو توتن کرعوا لشوين قطارو استا که پاش ساعت و نیوک داروا چوم مزره ديتم اوی من با توتنم زانيبو رزي ميوون هرميوه کامتر لمیتر اقبلند زور استورو پرلک زور ریکوبیک پی ام بیست ای شوی 20 کیلو ای لسوربی میوکانو کتب و سرزوی جګل راز زوربی چندراویہ نسگو کسراکن به ماشین بريبونو کایکاین به ماشین د درووه نقل او سفرم به کمال نه ګوت دګل اوش دا زور جګی واچوین کداوی کورد لیکردن زورین جابیدل خوشکریان داینه دا لچن مالک دعوت کراین کتیګ یشتم جونکی زور پای برزی فرانسن یکیان که پیوکی پنجه ساله دبو عربیشی زورباش دزانی. زوری لگیری لکردن دکرد. قسمان دکرد و وتی خلقی شرقی هموین تنها احساساتین. اوروپای سرین لزمانی احساسات در ناچه. اوروپا تنیج و آمار دزانی. تو هزار سال بلی دیهات من سوتاوا گل من جنو من دال من مردون بر بومباد راون همو بیدانو در درمان کوتونا هیس بحر نده. بلان بله دو هزار و سياسة و شازده دي من که اوانده مالو اوانده سرخيزان و لوانش اوانده پیاو و اوانده جن و اوانده مندال عمری شان بله اگر دگرنو سري کیسه اولاده کنوا بونمونه ویتنامی هاوارین لخلق فرنسا کردوا هموشت بجمارو ارقام متو یعن دوازده هزار مندالی دتا سياسه ساله خلقی پیتخ بدنگی توپو بونبا کر بون امراضی بیستنیان لفرنسا و بورک راو لبازار سایگون دا فروش راو شویک لو دا دا باسی نمانی استعمار دا کرد که خلاص ده بی او جولکه دلم گوتی رنگ استعماری خوان چکو لشکر لناو بچه بلام استعماری پول هرگیز لناو ناچه بوداکتانی داکتانی خسکی خوی نقل جولکه دولمندی پاریسی یه راو کپر لسرته زستان هرچی بری درستانو باقی یوگوسلافیا کریو خویو بختی پولی نقدی داده استای یوگوسلافیا استای یوگوسلافیا که هیچی بون نمینه تو سطح قازانجی قازن جی پولاکیده داد تو بسرمایه و کابراهیجول که هشتار رازی نیه چند رفیقی کی صادق برهم هبم ؟ زورم کیف بیدهاتن که صادق تعریف معلوماتی دکردن ایرانی بون یک صادق کمال منی برده کباب خانی کی که زرفکانیان هموی کاشیشین و سماور ایرانیان بو. بلاب اواندهان پولیه ساند کلدر و دمانتوانی سیه جمعی باشی پیب خوین. کمال چوین مغازی دفتر و کیفی دستیب کرین. هر دو کش فرانسی نازنین. که برای کم دی رشکی فرانسیانی سرچنگی هبو. به با عربی بانگم کرد. بمی سټرډرچو با ارزوشتی خومن کړ روجیک سرمن به مغاځی جلی حاضر دا کړد د سټاکوتو شلوارو کې پربه برم کمال ترجمان بو کبه انګلیسي قسې وکړ وتی بچند خاوندوكان وتی 640 فرانک کمال وتی ګران او وتی ليره معاملې کردنیه کمال وتی نا کړم اگر به 150 ددن دمه وې کابره ټلیفون کې کړ وتی بشه حلې کړ کمال وته محکوت اوج دسته کې هابجهل بچن چوه فرانک فرنگ، منیش ست فرانک پنجا فرنگ دادم اووتی مسیو هیچ کس نیه تا بقید گی پالی رفیقه کد بی نناچاری فروشت من، بلن بزنه لیره سوده کردن نیه که حتی بوشینه و بغدا، هرکس دیدیتم دیگود ایلو درو نچاکه ام دسته پیدرو اوه رگرانی عزیز خوشویستو شیده این دنیای پرزانستی کتیب لیرده بمشویه حتی نکوتایی بشی هشتاو پینزی خمیندنوی کتیبی چشتی مجوری هجاریم کوریانی تا بشیگیترو لشوی کتر در پیتندگی نوا شوتن آرم.